دوستان عزیز لطفا بفرمایید دوستان عزیز دوستان عزیز لطفا بفرمایید خب دوستان عزیز در مورد کالبود روانی میخوایم با هم صحبت بکنیم بحث با اهمیتیه همونطور که دوزی دادیم کالبود ذهنی ادراکات ما رو مکشوف میکنه کالبود اختری پیوستگی حرکات و سیستم عصبی ثانویه بود و کاربود روانی هم بخشی است که احساسات ما رو مورد بررسی قرار میده. کاربود روانی از دو بخش مثبت و منفی تشکیل شده یعنی احساسات مثبت و احساسات منفی ما. خب در هر بخشی بخش مثبت جذب و دفع تششعات مثبت و جذب و دفع تششعات منفی رو خب اینا کلیاتی است که من الان میخوام توضیح بدم خدمتون توضیح دادیم که زبان واقعی انسان زبان تششعات و دیدیم که شما این تجربه رو دارین که وقتی در مقابل بعضی افراد قرار میگیرید احساس آرامش میکنید یا با بعضی افراد روبرو میشید احساس استراب نگرانی ناآرامی به شما دست میده درسته؟ خب پس ما در معرض تششوات همدیگه قرار داریم تششوهات مثبت از بخش مثبت جذب و دفع میشه خب و مثلا شما با بعضیها برخورد میکنید و میبینید که دارید ازشون تششوه محبت رو میگیرید انگار او با همه وجود میخواد به شما محبت کنه در حال که ایش نمود عملی نداره و یا در بخش منفی هم همینطور ممکنه احساس بکنید که طرف با نفرت به شما داره نزدیک میشه در حالی که هیچ نمود عملی نداشته باشه خب ما یک درچه داریم این درچه یا روی شبکه یا روی مثلا بخش مثبت یا روی بخش منفی ما در آن واحد از هر دو بخش نمیتونیم استفاده کنیم در هر زمان فقط از یک بخش میتونیم استفاده کنیم و این دریچه در هر لحظه روی یکی از این بخش رو چیکار میکنه این دریچه فرضیه یا اینجا یا میاد این بر روی اینو میگیره یا روی اینو میگیره ما از دو بخش نمیتونیم استفاده بکنیم در آن واحد درست شد؟ پس اگر ما در این حالت دریچه روی فاز مثبت باشه روی این باشه ما از کدوم بخش داریم استفاده میکنیم؟ منفی بازه اصطلاحا میگیم در فاز منفی هستیم اگر این دریچه روی فاز منفی باشه روی فاز مثبت بازه. ما اصطلاحا در فاز مثبت هستیم درسته یا نه در حالتی که مثلا الان تو فاز منفی هستیم میتونیم تزشع منفی بدیم تزشع منفی بگیریم در این حالت اگر تششون مثبت به سمت ما بیاد چی میشه؟ با این در بسته روبرو میشه و برگشت میخوره این بحثی که الان داریم بحث مهمیه باش خیلی سر و کار داریم و جواب خیلی سوالاتمون هم توی این مسئله هست خلاصه این تیکر رو دوستان دقت و عنایت داشته باشند خب الان در این حالت تششوه منفی میتونیم بدیم و تشش منفی میتونیم بگیریم و بلعکسین وقتی این درچه میاد پایین میتونیم تششوه مثبت بدیم و تششوه منفی هم چیه بگیریم حالا مثلا گفتن که اقادیم گفتن کسی که نفرین کنه اول یقی خودشو میگیره چجوری اول یقی خودشو میگیره؟ خب تش منفی رو میده. خب تش منفی رو که داد دریچه بازه، ممکن در همین الان که در باز درجه منفی از چندی نقطه تششات منفی به سمت خودش چی بشه حرکت کنه و بیاد داخل. و در این حالت کسی که برای ما داره تش مثبتی میده دعایی میکنه نمیتونم تشو مثبت داره میده. اینجا، مستوده خب و وقتی که ما در فاز مثبت هستیم هر تچشوی منفی که به سمت ما بیاد با در بسته روبرو میشه. دقیق گردین چی شد؟ این نکته مهمه که ما وقتی در فاز مثبت هستیم تمام تچشوهای منفی که به سمت ما میان به در بسته میخورن. پس یک راه مسونیه در تچشوی منفی چیه؟ در باز مثبت بودنه ایسا مسیح علیه السلام فرمودن که حتی دشمنان خودتان را هم دوست داشته باشین حالا با این توصیف چرا اینو گفتن؟ بله؟ خب اگر ما دوست نداریم اونا رو دوست نداریم باشیم نفرت داریم دیگه نفرت ما تششو منفی ایجاد میکنه به سمت اونا درست شد؟ همین در بازه ما یه تششو منفی به سمت اونا میدیم ولی بله ممکنه که از این ور اون ور دها ها منفی به سمت ما بشه؟ به سمت ما بیان خب ما یه ضرر به اون زدیم ولی ممکنه خودمون هم در معرض صدمات و لطمات قرار بگیریم علت این فرمایش عیسی مسیح علیه السلام در این رابطه بوده حالا البته چون ما خیلی با این موضوع کار داریم و دقیق تر متوجه میشین که حالا ویروس های غیر رو بشناسیم نمیدونم چی بشناسیم متوجه میشین فقط یه رای ورود داره اونم اینجا دقت بکنید و اگر ما این در رو ببندیمش خب در واقع در دروازه بسته است این اناسر منفی نمیتونن بیان داخل پس اگر اومدن داخل ما هم یه تقصیری داشتیم گنایمون چی بوده؟ اینه که در فاز منفی بودیم. در فاز منفی بودن خودش یک گناهه. خب؟ قالت جرم جریمه چی میشه؟ جریمه اینه که آلوده میشیم. آلوده که شدیم درگیر میشیم. درگیر که شدیم اون برد مکافاتشو باید چیکار کنیم؟ بکشیم. خب. اجازه بدیم. الان من توضیح میدم. چشم. چشم. خوب اجازه بدین اجازه اجره ب... نکنیم من همه اینا رو خدمتتون توضیح میدم اگر کم و بود بعد با همدیگه مورد بررسی قرار میدیم خوب همه ما پس در مرض تششوات منفینا هستیم یکی از راعه سرایط مشکلات بیماری و اینها یکیش تششواتی یکیش ویروس های غیر ارگانیکه توضیح داده بودیم روانشناسها ها و گروه های خیلی در معرض این آلودگی هستند مخصوصا روان که در معرض کار بالینی هستند بسیار بسیار زیاد در معرض این درگیری های هستند هستند و خیلی از اتیکابشون انتقال پیدا میکنه خب لای محافظ که فرمودین لای محافظ ما رو محافظت میکنه به شرطی که در هین ماموریت باشیم درست شد نه اینکه ما از اینجا بریم بیرون بعد ببینیم فاز منفی بعد فاز منفی بگیم خب ما لایه محافظ داریم لایه محافظ ما رو در هین ماموریت خب الان ما در هین ماموریت هستیم ما خیلی همون هم فاز منفی هم ممکنه باشیم اما در هین ماموریتین مشکلی هم پیش نمیاد ولی کن در حین مهموریت نباشیم فرق نمیکنه مثل این یه مهمور اداره دارم اون خودش یه طرفه بره خب اگه در حین مهموریت باشه میگه در حین مهموریت هم یه طرفه هم میره نمیدونم پلیس میدونه که ها جا دلش بخواد یه طرفه و نمیدونم چیه و خودش همه کار در حین مهموریت سبقت غیر مجاز نمیدونم چیه همه رو انجام میده اما اگر همه آدم در این ماموریت نمازی یکش رو میگیرم دوباره خودش هم به صلاح گیره خب حالا خوش آنان که دائم در نماز بی خوش به حال اونایی که دائم در اتصال هستند و مفهوم نماز و مفهوم به صلاح این ماموریت، حالا یواش یواش ما محور فکریمون میشه این ماجرای شور الهی وقتی مهور وجودیمون شد این مسئله ما هی داریم به سمت دائمل نماز بودن و دائمل اتصال بودن از این نقطه نظر چی میشیم؟ نزدیک میشیم و هی این دامنه حمایت این حفاظ ها چی میشه؟ گسترده تر میشه این از این مسئله تا جایی که هیچ کدوم از ترفندهای منفی کارگر نمیشه دقت میکنید چون توی این ماجرا شما بعدا میاد میدید ببینید که یکی از این غذای های تششعاتی به گونه است که ما در معرض تششعات مختلف قرار داریم مثلا یکی از این تششعات است که همیشه هستیم و قرار داریم ماجرای های روتب خورده رو دوستان میدونن چیه دیگه خب یه روزی, <تصفح> یه, روزی، یه شخصی فزند خودش آورد پیش پیامبر صلی الله علیه گفت که یا پیامبر این فرزند منو نصیحت بکن رطم زیاد میخوره گفت ببرش فردا بیارش اینم برد و فردا آوردش فردا آوردش گفت آوردم بعد پیامبرم رو کرد به این پسر و گفت پسر جان روتب زیاد نخور برو بعد یا رو گفت که خوب یا پیانبر خوب این همه دیروز میگفتی که ما اینو نبریم و بیاریم ما این راه بریم و برگردیم گفت من دیروز خودم روتب خورده بودم خب فکر میکنید که این پسره که نمیدونست که پیانبر روتب خورده میتونست کارشو انجام بده چرا گفت که ببر فردا بیار چون تششعش تششعش آدم روتب خورده است خب و به سلات در این حال پیانبر میدونسته که تششوش داره کار میکنه مثلا فرض کن در امر به معروف و از منکر کسی که داره امر به معروف میکنه یا منکر خودش نباید رو تبخورده باشه اثر نمی کنه تاثیر نمی کنه یعنی تششوش داره یه چیز میگه کلامش یه چیز دیگه میگه اینا همدیگه رو خونسا میکنن خب یه تششوهی داریم اینطوری یه تششوهی داریم که برای ما گسیل میکنن می برای ما میفرستن مثل همه تششوه مثبتی که ما خودمون میدیم تششوهات متفاوتی ما خودمون کار میکنیم دیگه شما الان در یک ارتباطی یک کاری دارید انجام میدین مثلا فرصمون بعضی دوستان که میدونن مثلا در دوره چهار ما تششوه مثبت داریم کنترل تششوه منفی داریم همش به گونه‌ای کار با تششوهاته حالا جریاناتی هستند که تششوه منفی میبرستن این تششوه های منفی یکیش مثلا پرست میاد کار زبانبند بندو میکنه یکی کار سیاک کردن رو میکنه یکی کار تذکیر قلوب میکنه یکی کار نمیدارم چی کار میکنه انوا و اقسام ما در معرض تششعات مختلف هست چند نفر خبر دارن؟ چند نفر این چی دارو خبر دارن؟ خوب؟ میدونین که چند؟ خب ما در معرض جنگ تششعاتی هستیم بودیم هستیم و خواهیم بود منطقا تا حالا یه جوری بوده که به یه شکل بعضی خبر داشتن بعضی هاستن نمیدونستن تششعاتیه به یه صورت های دیگه نگاه کرن الان وارد یک عرصه یا تاریخ داری میشیم که شما با تششعاتی دارید کار میکنیم اون داره با تششعاتی کار میکنه زبانش هم رو مشخص میشه اگه خودش روشن نکنه ما روشن میکنیم خب و معلوم میشه که تجشعه در مقابل تجشعه تجشعه و ضد تجشعه و, و ماجره های دیگه و یک مسئله پیش میاد که همونطور که سرباز خود میذاره سرش میره که ترکش ها در امان باشه ما هم اینجا یک مسئله پیدا میکنیم که چجور سنگربندی بکنیم درسته؟ مسائلی پیش میاد که ما چه چجور سنگربندی کنیم تحت چه شرایطی صدمه میخوریم تحت چه شرایطی ایمنیم چه جوری از این تششعه خودمون نمیدونیم داریم میریم و میخور پس کلمون الان چند نفر از ما بسته شدیم بستنمون نه من نمیخوام الان چند نفر خودشون میدونن که بستنشون خب حالا این بستن این بستن یکی که امروزی مثلا الان میگه علمی فکر کنه این بر رو نگاه میکنه اون رو نگاه میکنه خودشو نگاه میکنه میکنه آخه چجوری منو بستن ولی همون تو که اگر شد با هم تست کردیم گرهی رو میشه باز کرد گرهی رو میشه ایجاد کرد اگر میشه الان قلبی رو از تنش باز کرد میشه یه تنشی رو, رو قلبی گذاشت اگر مشکلی حل میشه میشه مشکلی ایجاد بشه توجه میکنید و حالا چه ماجراهای مفصلی تو این قضیه خوابیده و ما متأسفانه وارد این عصر شدیم البته در طول داره اینا بوده تا یه عده‌ای خبر داشتن همگانی نبوده اما الان در دنیا این مسائل همگانی شده و ما باید نحوه ایمنی ایمن که ایمن سازی خودمون رو بدونیم دقیق درمود این باید بدونیم ندونیم پس کلمون میزنن یک کسی یا آگاهی یا ناآگاهی یه یا حرکتی میکنه ما رو درگیر میکنه حالا بیا درستش کن خب حالا بیا درستش کن و در واقع عده زیادی نا میرن تحت عنوان یک کارایی ایجاد مسائلی و بعد عده میفتن تو چاله حالا بیا اینا رو از تو چاله درشون بیاد بیرون یعنی یه نادان این سنگی رو میندازه تو چه ها تا دانا نمیتونن درش بیارن حالا انشالله خودتون از نزدیک با این مسائل از حالا به بعد آشنا میشین و برخورد میکنید و بیرونید که وای وای, وای, وای چه ماجره های به اینجا وجود داره جانم جانم بله بله حالا اجازه بدین؟ من کلیت کلی میگم حالا یاد جاری و خواهشور رو، مادرشور رو. اینا آسان حالا بهلا نیفتیم. بلاً درس رو چیز کنیم؟ داری داری. کلی کلی نگاش بکنیم. خب بنابراین ما باید بدونیم که با مسائل خودمون چیکار باید بکنیم و چه جور ایممن باشیم. خب در این مورد این یک مطلب مهمی اینجا چه بود خوابیده بود. که یک دستور عمومیست و جنرالی شامل حال همه میشه در فاز مثبت بودن حالا بگذاریم از ها و مسارینا اونا یه بحث جداییست میاییم و یواشاش وارد صحبتش میشیم خب اما اینجا یک بخشی رو داریم که ذریب طول عمر این تیکه هرچی از اینجا این برتر میبینیم که این ذریب بیشتر میشه حالا من سعی کردم رو این شکل ساده، در واقع اینو این به این شکل و به این صورت نشون بدم. هرچه بیشتر ما از فاز مثبت استفاده کنیم، این ذریب بیشتر میشه. هرچه از فاز منفی بیشتر استفاده کنیم، این ذریب کمتر میشه. یعنی این فاز، فاز منفی، هد اندو، قم قصه حسادت نمیدونم همین نفرت و اینها در واقع ذریب طول رو کم میکنه حالا ایه طرف تششوهات ما منفی میشه که اینجا اثر میداره ایه طرف مغز در مقابل پدیده های احساسی منفی سم تولید میکنه تششوهات مسموم خواهد داشت یعنی این بحث علمیه اگه در فاز منفی باشیم مغز ما هم ترشعات و هرمونهای مند به مسموم ایجاد میکنه خب پس ما یک ذریب ما یک ذریب طول عمر داریم در ذریب طول عمر این مسئله رو داریم وقتی یک سلول میمیره و جاشو میده یک سلول دیگه معمولا یه افتی داره اینو ما بهش میگیم زریبه افت سلولی چقدر این افت بکنه در افراد مختلف متفاوته درست شد یا نه در افراد مختلف متفاوته و چیزی که تعیین میکنه به سلا روند پیری رو به سلا زود اتفاق میفته یا دیرتر اتفاق میفته اینجا این یکی از فاکترهاشه این نمودار رو با هم داشتیم یا نداشتیم اینو داشتیم با همین این رو بله که روان زن جسم در افراد عادی این روان زن جسم بله در افراد عادی این شکوفایی محور شکوفایی این زمان در افراد معمولی در افراد معمولی اینطوریه یعنی روان و ذهن و جسم میاد به شکوفایی میرسه یه حد شکوفایی نهایی میرسه و از اینجا به بعد سقوط میکنه جسم که روند پیری رو طی میکنه ذهن روند نزول رو طی میکنه به عنوان مثال افراد از اینجا به بعد میگن دیگه ما قابلیت یادگیری نداریم حافظمون کار نه میکنه نمی‌دونم دیگه ای خب از این نقطه نظر روان هم سقوط میکنه هر چی میاد این تار به سمت قبل برگشت میکنه به طوری که در انتهای این مثلا در سن هشتاد سالگی مسیه بچه پنج ساله میشه یعنی اینن اینه یک این بچه پنج ساله میشه هشتاد سالش 90 سالش اینه این بچه پنج ساله یعنی باهان جویی لجبازی و نمی دونم اینا رو پیدا میکنه به طوری که شما تعجب میکنید توجه بر دید دین خب عبد میخوام همینو بگیم این میگیم افراد معمولی افرادی که در زمینه تعالی کاری نکردن اما افراد غیر معمولی افرادی که در زمینه تعالی کاری کردن اولا جسمشون دیرتر سقوط میکنه این جسم خب این جسمشون و بعد روانشون هم روان و زن تازه بعد از بعد از اینجا تازه شکوفا میشه یعنی در سن 90 سالگی حافظهش بهتر از یه جوان 17-18 سال کار میکنه خب و روانش تازه از اینجا روان شده دیگه لجبازی نمیدونم چی برای اصلا براش مفهومی نداره خب اینو قبول دارید یا نه تو تجربتون هست یا نه خب بنابراین بنابراین این جسم میتونه دیرتر سقوط بکنه حالا اینجا بحثمون جسم البته اینو از هم جدا شدنی جدا شدنی نیستن پس در این افراد روند به افت سلول کی بوده؟ کمتر بوده تا افراد معمولی لذا در اینجا ما ذریب طول اوم داریم که این به طول اوم به یک فاکتور ارتباط داره یکی از این فاکتور اینه که هرچه چه بیشتر در فاز مثبت باشیم این ذریب هم چی میشه؟ بیشتر میشه درست شد؟ حالا اما فاکتورهای های هم وجود دارن ما در اینجا نرمبزار هایی داریم این نرمبزار ها هر کدومشون چیزهایی رو روی خودشون سخت و ضبط میکنن ما یک انرژی داریم به نام انرژی نوع دوم یک انرژی داریم به نام انرژی نوع دوم انرژی نوع اول چیه اینو بهتون بگیم انرژی نوع اول غذای میخوریم در انتهای این غذا میاد میشه بنزین سلولی ATP آدوزین تری این آدوزین تری تبدیل میشه به ADP آدوزین دی فسفات یه حالا اینجا چیزی که هست کم میشه و آدوزین مونو و این ازمیان انرژی سلولی ما چی میشه؟ تأمین میشه. اما یک انرژی نوع دوم داریم که جنبه مادی نداره و یه چیز عجیبیه. انرژی نوع دوم مثلا شما از یکی تعریف میکنید یکی رو تشویق میکنید یکی رو بالاخره یه جوری شارجش میکنید و اون یه دفعه یک انرژی چیزی رو در خودش احساس میکنه این انرژی نوع دومه حالا من یه چند تا مثال خدمت میزنم که شما با انرژی نوع دوم که در دور چهار و سرکار داریم و مورد شناسایی قرارش میدیم آشنا بشیم. فرض کنیم که یه نفر الان داره میره منزل خسته است اصلا قدمش از قدم به سادگی نمیتونه برداره در این تلفن تلفنش زنگ میزنه و اون گوشی رو به تلفن زنگ میزنه چیکار میکنه گوشی رو برمی داره و میبینه که از اون ور چیز یه خبر خوبی رو دارن بهش میدن چه اتفاقی میفته شارژ میشه خستگیش برطرف میشه گرسنه بود گرسنگیش برطرف میشه و خلاصه کاملا روبره میشه درست شد یا نه کاملا روبره میشه خب چه اتفاقی میفته؟ اینکه غذای نخورده، اینکه بنزین سلولی که اینجا وارد نشده و بعد شما میدونید در مسئله خستگی اسیدی که روی مفاصل تشکیل شده به اصطلاح ها رو فلج کرده یا داره فلج میکنه. خب در این صورت چه اتفاقی میفته؟ چطور میتونه یه چیز غیر مادی خب یک چیز غیر مادی بیاد و اثر فیزیکی به جا بذاره مثلا شما فرض کنید یه نفر ست بار بگیم بشین و پاشو بار آخر که میخواد بلند شه دیگه نمیتونه بلند فلج فلد میشه زانوشی میشه فلج میشه اسید تشکیل شده دیگه اون اسید ماجر را اک کار در این بهش بگیم که اه نمیدونم اه یک مبلغ نمیدونم فلان علکی علکی بله اسمت در فلان بانک یه خودرو اندام چی برنده شدی حالا الکی هم بهش میگی خب فقط میدونیم تو اون بانک حساب داره خب یه دفعه اینجا که فلج بود در واقع این زانه که فلج یه دفعه این از تو یا و تا دم در بانک هم دوید و خب و اونجا بهش میگن آقا هم چیز نیست و بعد اونجا دوباره وارا خب یعنی یه جا میتونیم شارژش کنیم یه جا میتونیم چیکار کنیم تخلیاش کنیم مثلا یه نفر خب این مثال اولمو تکمیل بکنم خب اگر مسئله دو دو تا چهار تا است چرا وقتی روی زانو اسید تشکیل شده یا روی مفصل اسید تشکیل شده و ماه چه فلج شده دیگه نبا به این سادگی تا ترمیم نشه تا بازسازی نشه نباید دوباره فهد بتونه راه چه چیزی باعث میشه که به سلام یه خبر دروغین باعث بشه که اثر اون اسید و همین چیزها روی مفصل، مفاصل از بین بره و فرد یه انرژی مثلا کاذب چیزی رو به دست بیاره و این کیلومترام بدوه خب پس ما با یک بخش هایی سرکار داریم که این بخش ها صرفا فیزیکال نیستن دقیقی بفرمایی بخش سر سرکار داریم مثل همینا که اینجا مثال زدیم اینایش که فیزیکال نیستند ولی تو مدیریت نقش دارن خب شما مثلا فرض کنید که یه نفر صبح کاملا استراحت کرده صبحونه مفصلی خورده کلپاچه خورده کاملا قبرا و منزل میاد بیرون شما بهش میرسید و میگید که امروز چرا این شکلی شدی؟ خیلی زه شدی؟ این چه لباسی پوشیدی؟ خب کفشاشو نگاه کن چه اتفاقی میابده؟ باقی با بعد میره که پاش شل میره با میره و دیگه نمیتونه خودتون نگهداره داره و دیگه اصلا نمیتونه قدم برداره خب اصلا نمیتونه دیگه قدم برداره همینطوره یا نه؟ خب چطوری شما تونستید کل پاچه که خورده الان کل پاچه خورده که دروغ نیست که الان انرژیش باید تو بدن در حال چی باشه؟ چرقه باشه ولی بله شما خب یه چند زیادت من کل پاچه رو که خورده چکار کردین؟ هیچی به هیچی هشت ساعت هم که خوابیده هیچی به هیچی دوباره باید برگرده خونه از خودش رو بسازده اصلا شما دیگه می بینید با وجود که استراحت کرده چیکار کرده دیگه نای نی حرکت نداره. حالا در دور چهار با هم صحبت می کنیم. این اساس جنگ روانی. خب اساس جنگ روانی و به صللا منتاق خود خب ما از یه ضبیه دیگه نگاه میکنیم اونا میگن که رویش رو تذیب کردیم، نمیدونم ال کردیم بل کردیم رویش تظیب شد. ولی مکانیسمشون نمیدونن چیه؟ اما، ما مکانیکش و رو همه مسائلشو رو کم و بیش اطلاع داریم میدونیم که قضایا چیه و کجا سر و سامان میگیره خب قبول کردیم یا نه همچی چیدی هست خب حالا ما چگونه باهاش کار کنیم خب ما چگونه باهاش کار باید بکنیم بباند فقط اینجا اطلاعش داشته باشیم بیایم سر این نرم ها سر این نرم ها ما از صبح تا شب انرژی نو اول خود کار خودشو میکنه مشخص معین این غذا رو میگیم این غذا رو چند ایجاد انرژی میکنه ما در شبانه روز نمیدونم به دو هزار نمیدونم کیلو کالری نمیدونم انرژی نیاز داریم از یه حرفا میزنیم اما در این مورد از صبح تا شب اینا بالاخره سر کار داریم یک نرم افزار اینجا داریم که این نرم افزار انرژی های رضایت و نارضایتی ما رو ثبت میکنه خب رضایت و نارضایتی مگه انرژی داره؟ خب پس گروه گروه انرژی نوع دوم و یه خورده مرده شناسای قرار بدیم رضایت و نارضایتی مگه انرژی داره؟ خب ببینیم شما یک کیلو میوه میخرید میارید خونه میگید که آقا یک کیلو از این بده و اوم روتونو رو مرو یک کلو میوه بده دستتون میاد خونه. خالش میکنید ر رو که نصفش خرابه خب، کاملا هم حال بودید خستم نبودید گرسم نبودید. یا اگرم خسته بودید، حالا تا میبینید این نصف میواایی که براتون انداخته این تو خرابه خستیکیتون ده برابر میشه درسته؟ و اگر ببینید نه واقعا میباید که داده خیلی عالی داده خستگیتون اصلا به دور کلی چیه در میره شما یه, یه می میخرید میارید خونه اولین کسی که میبینه میگه که این قلابیه بعد شما چی میشین؟ شما, شما شروع میکنید دوباره واربتن و دستبالتون این و ممکنه بلافاصله تب به سراغتون بیاد تب بکنید این حتما پیش اومده دوستان میدوند توی یک حوادث اینچنینی تب میکنید ارتباط تب با یه اوتگلون چیه؟ چون تا اونجا که میدونیم تب یعنی آجیر خطر یعنی عوامل خارجی در سیستم دفاعی بدن مثلا خب اتفاقی که میفته در این حالت سیستم دفاعی بدن با این مکانیزمایی که آشنا میشیم به این قضیه ارتباط داره. اگه این مسئله بیاد پایین سیستم دفاعی بدن هم میاد پایین بعضی اگه ما حالشون رو بگیریم بعدش مریض میشن یعنی اگه بیم این چه کفچه چه این چه لباسیه چرا این شکلی شدی؟ بعدش به بستر بیماری میفتن مکانیست چیه؟ خب اینا هیچ کدوم جوابای نیست که دنیا علم بتونه بده کار دنیای علم نیست علم باید زیر میکروسکوپ نگاه کنه اینا زیر میکروسکوپ دیده نمیشه خب در این صورت حالا اتفاقاتی میفته که سیستم دفاعی بدن میاد پایین وقتی میاد پایین با ما میکروارگانیزما همیشه زندگی میکنن همیشه هستن به محض اینکه سیستم دفاعی بدن میاد پایین حالا میکروارگانیزم فرزت پیدا میکنه که یه خودی نشون بده لذا یه حمله میکنه و ما دقایق بعد میبینیم که کردیم آژیر خطر به صدا در اومده خب خیلی مواقع ما حال منو میگیرن بعد بینیم باید سرم درد گرفت حال منو گرفتن بینیم که ندام چی شد حال منو گرفتن حالا اینا همه دلیل داره همه میتونیم روی علتاش در دوره های مختلف با هم صحبت خواهیم کرد دکتر بفهمید. حالا حالا این کلیتشه این کلیتشه بعدا هم ببینیم که یک فیلتری داریم راجعش صحبت کردیم فیلتر رو خب یه فیلتری داریم یه اشاره می فکر کنم اشاره داشتیمش دو دور درسته یه فیلتر داریم همه چی از اون فیلتر رد میشه و این این فیلتر است که ایشون و با ایشون و با شما با اون متفاوت میکنه بستگی به برنامه هایی که توی اون فیلتر هست اونم توضیح میدم خدمتتون خب بنابراین حالا این فردی که اوتکلون اوت رو خریده و افتاده تو بستر تب و اینا یه دفعه یه نفر دیگه میاد میگه چیه اینا بعد حالا کاری نداریم اوتکلون رو میگیره میگه این اصله اصل چی گفته این قلابیه بعد یه دفعه تو رختخواب جون میگیره بلن میشه بعد یه دفعه میگه نه حالشم خوب شد تبش هم بعد طرف شد دیگه هم مشکلی نیست تازه حالا قبلاغ هم هست که آخ خب یک ممکنه همین اشتباه کرده باشه همون معلوم نیست کدومشون شاید اولی اشتباه کرده دومی راز گفته یا بالعکس اما چطور یک کلمه حرف یک کلمه حرف باعث شد که ما بیوفتیم یک کلمه حرف باعث شد برنشیم اگه این دو تا چهار تا این مکانیزم وجود ما دو تا چهار دو دو تا از علمی علمیه, علمیه. دیگه ما باید ببینیم که آقا این سلول اینجوری کار میکنه اگر این آنگا آن دیگه نباید دستخوش این مسائل بشه. چرا میشه؟ خب چرا میشه؟ حالا با هم صحبت داریم. اما ما میخوایم اینجا بحث نرم‌افزاریشو بکنیم. فعلا بحث چراییشو یه مقدار باشین تا بعدا روی نقشه وجود و اینها با هم کار بکنیم. کار داریم با هم دیگه. خب بنابراین اینجا وقتی که احساس رضایت میکنیم اوتکرونه رو قریدیم اصله چی میشه؟ انرژی نوع جاری جاریست وقتی احساس نارضایتی داریم چی میشه؟ داریم تخلیه انرژی داریم تخلیه انرژی مثلا از کارمون راضی هستیم یا راضی نیستیم کدوم کیش سر کدوم کار زودتر خستگی میاد خب از زندگیمون راضی هستیم راضی نیستیم از زندگیمون از بچهمون، از نیبو چی؟ از از دوستامون اینا همه چیه در واقع پاسخش تبدیل میشه به انرژی نوع دوم یعنی پول رایج احساس یعنی این جاها سر و سامان میده یه دریچه رو باز میکنه یا از اون بر یا از این بر یا انرژی منفی یا انرژی مثبت ما همیشه چیزی درما جریان داره که جنبه مادی نداره خب هیچ چیزی هم نیست ما بخوریم بگیم اینو بخوریم انرژی نوع دومو رو برامون ایجاد میکنه یعنی اون کاری که مثلا تشویق میکنه در ما ایجاد کنه یا یه کاری که رضایت در ما ایجاد میکنه نمیدونم اونم ایجاد بکنه درسته؟ خب مثلا فرض کنید که آرمانگرایی های ما مسئله هواخواه بودن ما طالب بودن ما نمیدونم همه اینا تبدیل میشه به انرژی نوع دوم مثال بزنیم فرزن مسابقه فوتبال یکی از خیلی مشخص در مسابقه حالا مسابقه فوتبال، والیبال نمیدونم هرچی دو طرف داره و دو, دو دسته هوادار درسته؟ بازه شروع میشه همه مثل همن بازی که تمام میشن یک عده یک انرژی زایدال بحثی درشون به وجود اومده نمیدونن چیکار کنن خودتون از کجا بگشن بالا چقدر بدون، چیکارش بکنن انرژی رو حالا بستگی داره به اهمیت اون مسابقهه خب، مثلا اگه مسابقه جام جهانی باشه دیگه, دیگه این مسئله به یه هفته میکشه که یه هفته نمیدونه چیکار بکنه نه خواب نه نیاز به خواب نه نیاز به خوراک و میتونه کیلومترا و چیدا بدوه و اونی که باخته یعنی هف... مثلا تیم حالا که این هوادارشه منانم که رستم و پهلوان تیمی که این هوادارشه باخته این میدونی که نایه حرف زدن نداره، نایه را رفتن هم نداره هم استودیم هم همچنین سلانچه یه جوری چهار دست و پا خودشو میرسونه ماشینه میره ماشینه که بعد دیگه بقیه مسائل خودتون میدونین خب یعنی یعنی یک هوادار بودن، هواخواب بودن طالب بودن انتهاش باید به زبان انرژی بیان بشه همه چیز در انتها به انرژی این ها منتها بشه مثلا حالا شما میگه در ترم دو راجع بیماری های روانتنی الللش، اللل ابتلاعش یه توضیح بدیم میبینیم رفتار های دوگانه ما فزن ایجاد یه مسئلی میکنه مثل رفتار دوگانه مثل تظاهر بان موسازی نمیدونم سرکوب سازش اینها منجر میشه به انرژی پتانسیل منفی یه جور دیگه انرژی چجوری؟ ببینید مثلا فرض کنید شما یه نفر رو چشم دیدنشو نداری حالا می‌بینیدش؟ شرایط محیطی جواب میکنه که شما باش خوشبشت کنید نمیتونید که یقشو بگید یا بگید من بدم میاد اصلا مثلا خوششوهره مثلا خود نمیتونید بگید من بعد تو خب مثل میگم در این صورت فرد داره خوشبشت میکنه و ای باید دلم تنگ شده بود و نمیدونم چرا و سر ما نمیزنی و قربونت برم و حتما پیش ما بیا و حالا در درون چی میشه؟ هرس میخوره. که چرا نمیتونه خفش کنه؟ خب این هرسی که میخوره دوباره زبانش زبان انرژیه. منتهی انرژی که پتانسیل یعنی مثل فنر میشه، جمع میشه رو هم و منفی هم هست. و بعد حالا با چه مکانیزمی میشه به اصطلاح بیماری روانتنی میشه با هم یه اشاره بهش خواهیم داشت. این تا اینجا داشته باشین. البته دوست عزیزمون یک مطلبی رو دادن که سرکار خانم رزبانی. طبق یک تحقیق علمی ذریع به طول اوم در برندگان جایزه نوبل بیشتر از کسانی بوده که کاندید شدن ولی برنده نشدهند. خب یعنی مقایسه به اون که کاندیز شدن ولی برنده نشدن با اونهایی که برنده شدن به طول عمر فرق میکنه یعنی اونهایی که برنده جایزه نوبل شدن رضایت بیشتر، انرژی به مثبت بیشتر این روی به طول عمرشون تاثیر داشته درست شد؟ خب خیلی ممنون خب بنابراین روی ایدئال های ما اهداف رو که فرض کنیم که میگیم در فلان مثلا امتحان قبول بشیم اهدافی رو میذاریم آرمانی رو تعیین میکنیم نمیدونم چیکار میکنیم همه اینها نرمبزارهای متعددی اینجا داریم که هر کدوم از این نرمبزارها خب در این خصوص ضمن تبدیل خواستهای ما به زبان انرژی منطقه کردم دسته عظیمی از انرژی ها فقط یک نوع انرژی مادیه اون هم همین بحث ATP. بقیه انرژی‌هایی که سر کار داریم باهاش غیر مادیه جان چند تا حالا باشه با... تا اینجا من این رو جنبندی بکنم بعد شما سوال بفرمایید. خب پس منظور من میگم از غیر مادی یعنی میدونید که ما یک مقصد که میگیم ماده انرژی آگاهی الان این انرژی چه جنسی داره؟ فرکانس داره؟ طول موج داره؟ همینی که شما تشفیق اگر بکنیم شما یک احساس اینجوری میکنید اثرش روی شما به صورت انرژی ظاهر میشه اما اصلش از کجا اومده؟ اصلش مبلدش چیه؟ مولد این انرژی کجاست خب پس ببینیم که آیا علم میتونه جواب بده بله آیا علم میتونه جواب بده این انرژی مثلا فرض کن منفی هرس خوردن یا انرژی نوع دوم حالا شارژ و دشارژش و انرژی ها یا ارتباطات دیگه یا اینه که گفتین جنگ تششعاتی نمیدونم اینها آیا میشه اینا رو به زبانه؟ حالا علم میتونه سر ازش در بیاره سر نمیتونه در بیاره ولی بیان داره میتونیم بهش نزدیک بشیم میتونیم توضیح بدیم میتونیم براش نظریه پردازی کنیم تئوری بدیم آزمایش ترتیب بدیم و خیلی کارا میتونیم بکنیم باید بکنی یعنی انسان باید به خودشو بشناسه خودشناسی بله تا این شناخت رو به دست نیاریم هنوز عملکرد های ما ناقص بیمار میشیم چرا بیمار میشیم چون این شناخت ها رو نداریم اگر این شناخت ها رو به دست بیاریم وضعیتمون حداقل درصدی بهتر میشه خب حالا اگه دوست عزیزمون نمیتونه تحمل کنه عجله داره بدیم میکروفون خدمتشون بفرمایید استاد ببخشید اونجا که در مورد رضایت و ادب رضایت صحبت می‌کردین یعنی اگه ما ناراضی هم هستیم از چیزی نباید بدلمون بد را بدیم یعنی باید سخت نگیریم اینا ببینید من الان نگفتم سخت بگیریم یا نگیریم میگیم زبانش اینه خب پس چی حالا اجازه بدین اجازه بدین ما میگیم که ببینید که ما که اینجا الان داریم میگیم که زبان انسان اینه و اگر که اینجا ایجاد بشه، به طول اون کمک میکنه اگر اینجا باشه، این ضریب رو چیکار میکنه، کاهش میکنه ببخشت، شما مطرح کردیم ولی ما نمیدونیم چیکار کنیم حالا، ما اما همینه دیگه، ما روش میبینیم اول میمیم همه چی رو به هم میریستیم بعدا ببینیم که چیکارش میتونیم بکنیم استاد ببخشت، کاربورد لایه محافظ غیر از موارد فرادرمانی که روی مبارد جسمی کاربردdish ارث کردم در حین ماموریت حین ماموریت یعنی زمانی که شما دارید باید به شعور لایف فکر میکنید دارید کار میکنید دو به هر نوعی به شعور به این هوشمندی به یک نوعی باش کار دارید در حین ماموریتی ولی می دوام زمانی که دارید کار خودتون رو میکنید نمی دونم دو, دو, دو تا چهار تا خودتون رو میکنید نمی دونم خرید و فروش خودتون رو میکنید دونم چیکار میکنید نه اُسفواز معذرت از شما پس حالا اگه ما از یک کسی بدمون بیاد و مجبور هستیم باش برخورد داشته باشیم اونجا که شما میگفتین انرژی پتانسیل ایجاد میشه چیکار کنیم ترم 2 این صدا یهو ستاهم شد ستاهم شد کوچولو بود اجازه بدین ببینید ما حلقه هایی داریم می‌ریم استفاده می‌کنیم ازش از خب ترم دو بیماری‌های روان تنی رو می‌شناسیم فهمشنا بیماری روان تنی رو که شناختیم مکانیزمش، علتش، مسائلش و بعدم در اونجا حلقه وارد میشیم هم بهمون نشون میدن که ما چه واکنش‌های قالبی بر ما هست. واکنش قالب شما الان چیه؟ هم بهتون نشون میدن هم در انتها زرفیت رو میارن بالا. عرفان یعنی ظرفیت سازی. یعنی ار... یکی از تعریفاش اینه که ارتقای ظرفیت. یعنی شما همونه. ولی پتانسیل منفی ایجاد نشه. بذاریم سر جای خودش راجعش صحبت کنیم. خب بنابراین این این نرم افزارها متوجه پس شدیم که ما دستمون تو هوا تکون می‌دیم. خب این عمل دیگه درسته؟ عکس عملی خواهد داشت. خب تعبیر داره. روان اینو یه جور تعبیر میکنه زن اینو یه جور تعبیر میکنه بدن یه جور تعبیر میکنه اون واکنش رو خودشو میده این واکنش رو میده اون واکنش رو میده این نمیدونم عمل خودشو و در نهایت ما چی هستیم؟ سیستمی هستیم که بر ما قانون حکب بر ما ما قانون مندیم و دستمونم اگه قرار باشه تکون بخوره باید بدونیم برای چی دستمون رو می‌خوام تکون بدیم توجه فرمودیم دستمون رو چرا می‌خوام تکون بدیم لذا؟ ما یواش یواش متوجه هدفمند بودن خودمون میشیم یواش یواش متوجه هدفمند بودن هستی میشیم وقتی که من دستم تکون بخوره در جهان هستی معنا داره حالا در دور هفت تازه متوجه میشیم چه معنایی داره ارتباط شعوری خودمون با هستی رو در دور که مورد بررسی قرار می گیره تا از اونجا هم متوجه های دیگه میشیم خب به هر حال میبینیم که هر ذره‌ای در این اکوسیستم سیستم به صلا به دنبال یک غذایایی داره میره و میاد و در یک چرخه قرار داره خب این از این مساله تا اینجا اگه دوستان سوالاتی یه چیزی مطرح هست بفرماین تا بعد دوباره ادامه بدیم بفرماین بفرماین تو بیداری خود میتونیم مثلا خودم به شخصی میتونم کنترل کنم تو پازه مصبت باشم ولی موقعی که مثلا در خواب هستیم این موقع کار بکنم صبح بارم میشم میبینم که توی فیم دو هست بله این ماله ماله چهاره ببینین من اجازه بدین اجازه بدین ببینین چون که بحث ها خیلی گسترده است خب از اون جای که بحث ها خیلی گسترده است دوستان قبول بکنن که اگه بخوام تخصصی و کارشناسان جواب بدیم باید بیاد موضوع باز نشه جواب همینجوری به درد نمیخوره و اینم باید بیاد دستر جای خورش تو حلقه های خاص خودش مورد بررسی قرار بگیره من خدمتون از بکنم که افراد معمولی صبح بلند میشه میبینم که بله یه خوابی دیدند و نمیدونم چی شده با اینها ولی بعد شما متوجه میشین که یا چه در خواب چه در بیداری ها شبکه مثبت یا شبکه منفیه. بنابراین ما تراهی‌هایی که تراهی انسانی مهندسی انسانی است، مهندسی خاص فکری نه حالا اینکه بحثه که بیرون هست. شما الان چند نفر از دوستان خوابشون عوض شده؟ یعنی تو این دوره گومدیم خوابشون عوض شده؟ چرا چنف... سیس... مثلا خوابشون شباو شده، رنگی شده، هدفمند شده؟ چند نفر داریم؟ خب ما امجج برنامه ها نگفته بودیم هست. درسته یا نه؟ ولی شما اجازه بدین یک سوال می کنم که شما این سوال جواب سوالتون پیش میاد. چه شده که شما خوابتون الگوی خواب ایند تغییر کرده؟ خب ناقه تو خواب که دیگه بینش شما که نمیتونه تو خواب خواب این دیگه پس ببینید که اجازه بده این نکته مهم و جالبی داره پس ببینید که ما در معرض جریان مختلف تششعات مختلف قرار بگیریم واکنش ما چه در خواب چه در بیداری تغییر میکنه اینو قبول میکنید یا نه با این آزمایش این آزمایش اینو نشون میده چون ما اصلا حرف هم نزده بودیم درسته؟ حالا خواب هدفمند میشه افراد معمولی خوابشون از یه الگو پیروی میکنه مثلا خوابشون باید برن سراغ تعبیر خواب بعد خواب چیز برعکس داره میگن که نمیدونم اگه جنگ بود سوله اگه سوله جنگ، اگه عروسی میشه عزا اگه عزاس میشه عروسی اگه خوب اگه درسته یا نه خب حالا دیگه خانما که از میگن خواب زن چپه اون که دیگه اصلا بمانن خب اما شما وقتی که میاد زیر چتر شبکه مثبت قرار میگیرید جریانات مثبت رو تون باز میشه خوابتون عوض میشه. الگوی خوابتون عوض میشه خواب خب مثلا فس منه شبخاف شدنش رنگی شدنش. حالا اینا ادامه پیدا میکنه اینا ادامه پیدا میکنه این مسئله برای اینکه در یک جایی آمادگی باشه که اگه دو خوابم خواستم به شما آگاهی بدن شما زمینش رو داشته باشید این برنامه برای اونجاست پس یک مهندسی در واقعیه این وسط مده هم میشه مثلا مهندسی کمال مهندسی کمال فرزن میخواد بگه چی؟ میخواد بگه اینجا داری این برنامه رو میکنه که در اونجا این کار رو بکنه برداشت بکنه خب پس ما اگر قرار باشه که اه نمیدونم اه خوابمون اینجوری بشه اون اونجوری بشه نمیدونم چی بسار بشه آیا میشه تراحیه آی کرد یا نمیشه جواب خب این, این آزمایش نشون میده که این آزمایش نشون میده که در واقع میشه الگوهایی مثلا حقیر بکنه. درسته یا نه؟ خب جانم بفرمین. حالا اون اطلاع از بقای آینده اتصال به شبکه بله اتصال به شبکه منفیه اون هم هست. مطاون داره برای خودش آماده میکنه ما هم داریم برای کار خودمون آماده میکنیم. اون آماده میکنه که فردا رو ببینه که بتونه منافعش رو حفظ کنه. خب ما داریم آماده میکنیم که کمال رو در واقع به دست بیاریم یا حفظ کنیم دقت میکنید بعد اونجا تمرین و نمی دونم این هر واس ما تمرین نداشتیم روی این موضوع تمرین نداریم اتصال ارتباط درست شد خب حالا حالا نظرتون راجبه انسان چیه آیا الان نظرتون به انسان همونیه که قبلا بود نه اصلاً می میبینید که ماجرای ما حالا تازه هنوز وارد هیچ چیزی نشدیم هنوز هنوز تازه می‌خوام ببینیم هوشمندی هست یا نیست بنابراین ببینید من اگر از دوستان اینقدر خواهش می‌کنم که کار عملیشون عملی برن انجام بدن بی‌دلیل نیست چون این یک بابی است این بازی که با هم شروع کردیم تحت اونمان بازی فرادرمانی ما که اصلا هدفمون این قضیه نیست که اصلا این برای ما میدونید از روز اول گفتیم این یک بازی هدفمون اینه که شما کار عملی انجام بدین تا بدونید هوشمندی هست که ما بعدن که میخوایم وارد حلقه های دیگه بشیم و همین جوری استفاده های اصلی رو ببریم شما در نمونید نگید که هست نیست اما اینجا میخوایم قال قضیه رو چیکار کنیم بکنیم اینجا میخوایم به این ماجرا خاتمه بدیم هست نیست رو خاتمه بدیم اگه قرار باشه این مسیر رو بریم باید اینجا به نژیه قطعی 100 درصدمون حتی یه نفرم نباید مردود باشه باید 100 درصد به این اجمی برسیم که هست بگیم خب حالا بریم بقیه ماجرا رو ببینیم چیه بقیه فیلمو بقیه سریالو بریم نگاه بکنیم اما اگر اینجا بمونیم دیگه چی میشه؟ دیگه بقیه حلقه ها مفهوم دست میده چون با یه چیزی میخواد کار کنی که هنوز باش کار نکردی که ببینی که وجود داره یا وجود نداره درست شد؟ جانم بفرمایید. بشر اولیه خب انسان از چند تا مسیر عبور میکنه این هم چیده قشنگه گوش بدین لطفا البته در این سمینار روز یک در ابتدای صحبتها من این موضور هم باز کردم سیدیش اتمالا اومد میتونید تاییر بکنید بخش رو گوش بدیم ولی من الان خدمتتون میگم ما جهان هستی گفتیم از, از بالا خدا حوشمندی بقیهش رو بفرمانید عاده قوانین اعداد خب اینا از اینا ده یعنی جهان هستی از عدد ساخته شده دو تا عدد این و مر باشه جهان خب جهان اصلی از عدد ساخته شده جهان هستی از قوانین ساخته شده جهان هستی از هوشمندی و جهان هستی تجلی الهیه خودشه به عبارتی انسان از ابتدا رو کره زمین اولین چیزی که فهمید چی بود؟ اولین چیزی که انسان رو زمین کشف کرد چی بود ؟ اعداد عدد و کشف کرد. اومد گفت یک دو خب از سیستم اعشاری و چی؟ و عدد و عددو کشف کرد. بعد اومد. جهان حسی رو سعی کرد با عدد بیان کنه خب گفت از این شهر تا اون شهر اینقدر پرسقه نمیدونم یا پرسنگه نمیدونم همین جوری اومد یواش یواش یباش روابط بسلا بیرونی رو با عدد بیان کرد بعد از این اومد بعد از این چی رو کشف کرد؟ قبانین رو کشف کرد می میدوست مثلا قانون رش می دوست. قانون ندونم چی این این اون قوانین حاکمه رو یکی یکی پیدا کردن نیوتون اومد اینو پیدا کرد نمیدونم انشته اومد اون رو پیدا کرد. این یباش یاش قوانین رو انسان بهش چیکار کرد پی برد. ما اومدیم روی این قوانین تعمیم به عام دادیم. یعنی توی ارفان ما قانون تعمیم به آم داره یعنی فرص کنید مرگ قانونمنده عدالت خداوند قانونمنده حکمت قانونمنده نمیدونم سرنوشت قانونمنده نمیدونم حالا در حالی که تا چیز فکر میکردن که کار دیمیه خدا الان میخواد اینو ببره میبرش خدا میخواد اونو بکشه میکشه بید. خدا میخواد اینو نمیدونم حالا اما الان می قانون بازتاب، قانون چی، قانون فلان، قانون بیسار نشون میده که نه من طول عمرم قانونمند دیمی نیست که دفعه الان اسرائیل برسه که الان من اینو میخوام ببرمش خب قانونمند هیچ کار خداوند نیست که دیمی باشه. تمام کارای خداوند، قانون در قانون در قانون در قانون در قانونه. هیچ کدوم نیست؟ و برگ از درخت نمیفته مگر به اذن او اذن او ارادشه ارادش قانونشه این همه برگ از درخت دارن میافتند تابع قانونن یا نه درسته تابع قانون بردار بکشین سه تا بردار یه بردار به سمت پایین یه بردار باد یه بردارم اینه که اینو به شاخه نگهداره داشته هر زمان این برای این بردار این دو تا از اون یکی بیشتر روش این بر کنده میشه هر برگی رو من منو صدا کنین تا من براتون بکنم خب خب یعنی اینکه آیا ما بر اذن خداوند تسلط پیدا کردیم نه اون رو اعمال کرد به صورت قانون در جهان هستی صادقه لذا این به ما کمک کرده ما خودمون رو بشناسیم من فکر نکنم که مرگم نمیدونم حالا خدا ببینیم چجوری نگاه میکنه آیا به من ظلم میکنه منو زود میبره یا نیدام چیز میکنه دیر میبره یا اینطور نیست؟ این قانون نزد ما تعمیم به آم پیدا کرده تعمیم به آم پیدا کرده یعنی شما ادالت، حکمت، پیسار، تمام هرچی رو که بفرمایید ما قانونش رو براتون چیکار میکنیم در میاریم بیرون میگیم این تابعه قانونه دیگه مرگ میگیم قانون تولد و مرگ خورشید هم متولد میشه، زندگی میکنه، پیر میشه، میمیره، دوباره متولد میشه، سوپرنوا، دوباره نمیدارم چی میشه، دوباره همینطوری. خب، بعد از این ما اینکه انسان قانون رو کشف کرد، اومده هوشمندی رو کشف کرده. خب، در یک مرحله قبل در یک مرحله قبل حالا اینا چندتا تعبیر داره اینو من اینجا فیران مختصر این قضیه رو میگم خدمتون ببینید مثلا مولانا گفت هر یک از ما خود مسیح عالم است. هر علم را در کف خود مرهم است. مولانا چند تا درمان انجام داد هیچی خب گفت میدونم ما خاک را به نظر کیمیا کنیم شانمت الله ما خاک را به نظر کیمیا کنیم صد درد را به گوشه چشمی دوا کنیم حافظ گفت دم نهفته بهز طبیبان مدعی باشد که از خزانه غیبش دوا کنند حافظ چند تا درمان انجام داد شما الان از همه اینا بیشتر درمان انجام دادید همون شما که کمکار این کلاس کمکاری بوده ها من اون در حاضریه بگم خدمتون یکی از کمکار ترین کلاس های ما در این چند دوره های مختلف این کلاس بوده کلاس صبحتون کلاس موسوم خیلی به مراتب از این کلاس بیدار بوده من این چیده نارضایتیم اینجا حتا روی این مزنه صرف شده بعد جوری این اینو نجام بهتون خب بعد ببینید توی اون مرحله هوشمندی آگاهیش ارائه شده خبرش داده شده کاربردش امروز داریم کار با هوشمندی رو انسان وارد مرحله ای وارد مرحله شده که کار عملی با هوشمندی انجام بده انسان اولیه نمیتونستن این کارو بکنن دقیق بکنید و در و... یعنی به صورت عامه منظورم به صورت عامه نه دو 2000 سال قبل عیسی مسیح علیه السلام چیکار کرد درم ولی به صورت عام که انسان شمول یعنی جای شما آمریکایی بشینه نمیدونم ژاپنی بشینه نمیدونم هر کسی میقعد بشینه انسان شمول الان عامه یعنی وارد مرحله شدیم که انسان هوشمندی رو بشناسه وارد این نقطه عطف تاریخی است و ما در این برهی که قرار گرفتیم این بره است و بعد از این چی رصد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند بعد از اینه که اینو شناخت نوبت این میشه اینقدر اصرار داریم به شما که کار بکنید کار بکنید کار بکنید سر این مسئله است که در واقع اینو که شناختید یک پله دیگه بیشتر باقی نیست این پله که دیگه برای ما ما به یقین و باور برسونیم چندین هزاران سال شد تا من به دینجا آمدم اوم دیگه داریم یه خورده دیگه اگر حماد کنیم میرسیم به اون جایی که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینند این است حالا در این باره کار با بندی مرحله ای است که انسان وارد شده حالا هوش بندی مثبت هوش منفی و از این نقطه نظره که انسان اولیه صرفا نهایت میتونست عدد بشناسه بالاتر از عدد نمیتونست بیاد البته ما یه تعبیر دیگه هم داریم یه چند دقیقه اینم بگیم بعد نیست یه تعبیر دیگه داریم که تن واحده انسان این شکلیه یک به مخروطیست حالا اینا معنی داره این انسان دوران جنینی ته کرده که کاری باش نداری یه دوران طفولیت یه دوران کودکی نوجوانی جوانی میانسالی سالی، خب انسان دوران جنینی شو بذاریم کنار اما دوران طفولیت یه تپ یه تپ تا چقدر میدونه تا چقدر زندگی میتونه بکنه فقط یه تپ میتونه زنده باشه حتی نمیتونه یه نوزاد نمیتونه چیزی رو بگیره نمیتونه که فقط میتونه زنده باشه بعد از یه مدتی این نوزاد میتونه یه چیزایی رو بگیره خب یه چیزایی رو میتونه بگیره خب انسان نخستین در دوران توفولیت چجوری بوده؟ فقط زندگی داشته فقط زندگی داشته و در حد خاصی بوده نه این شکلی این شکلی هم نبوده در حد شکلی بوده که چیزی هم لازم نبوده بگیره خب یعنی حالا ببینید که حالا چی میخوایم بگیم و خلاصه در یه دوران دیگه میاد دوران کودکی دوران کودک تازه به اوال عقل رو می‌خواد تجربه کنه یواش یواش به عقلش میرسه که اینو بگیره به عنوان یه چوب به عنوان یه ابزار یواش به نظرش میرسه چیدام ببن سرین با این چکش درست کنه تبر درست کنه درسته یا نه خب پس انسان توی یه جایی مرحله نوجوانی به سلا عقل رو یه جای حیات بوده یه جای عقل بهش اضافه شده یعنی نهایتا میتونسته عقل رو, ب... یعنی رو بفهمه نهایتا به این به فکرش رسیده که بگه من کجا هستم درسته یا نه من کجا هستم بعد از یه جایی در سن جوانیش اومده عشق رو پیدا کرده اولین خط رو کی گفته؟ در تاریخ انسان اولین خط رو کی اولین زوغ و به خرج داده؟ معلوم نیست؟ نمیدونیم نمیدونیم اصلا در طول این آیا انسان نخستین ذوق داشته انسان اولیه؟ انسان نهاندرتال؟ نه داشتند؟ داشتن؟ نه خب اگه جایی از یه جایی پیدا شده بله از یه جایی انسان طبعات عشق و پی برده همونطور که نوجوان از اول نوجوانی میاد عشق و ذوق و شوق و حیرت و تعجب و فداکاری و ایثار و مهر و محبت و اینا رو تجربه کنه انسان هم یه جایی که انسان نقصی که ذوق رو نمیدونسته چیه شعر رو نمیدونسته چیه اینا رو نمیدونسته چیه داشته آن قابلیت بالقوه رو داشته ولی به بلفل نمیتونسته تبدیل کنه و بعد از این یواش یواش این ذوق و شوق و اینا چی شده؟ درو درو شکل گرفته بعد شعر ایجاد شده آیا انسان شعر رو ابدا کرده؟ آیا انسان موسیقی رو ابداع کرده؟ نه. آیا هنر رو ابداع کرده؟ جوششیه اینا. اینا جوششیه. یک مسائلی هست که جوششیه و تباعات عشق درو زنده شده. یعنی توان بلقبه بوده به بلفل تبدیل شده. حالا اینا حتما یه ماجرایی داره که بازم سر فرصت صحبت میکنیم خب بعد از این مسئله انسان عشق رو پیدا کرده خب بعد از اینکه میاد به سن میانسالی میرسه مثل الان الان رسیدیم به سن میانسالی میانسال تجارب خودشو چیکار کرده؟ کرده تجاربشو به دست آورده مثلا رو طبعات عشق پخته عمل میکنه مثلا یه جوان رو تبعات عشق مثلا بسیار تندتیز احساسی عمل میکنه یک میان سال پخته تر عمل میکنه یعنی یک میان سال کار عشق رو بهتر میتونه باهاش بازی بکنه خب الان اون موقعشه حوشمندی الان تباعات حوشمندی دستمون افتاده ما داریم پخته تر باش. پخته عمل میکنیم قبلا چه 300 سال قبل 400 سال قبل 500 سال قبل پنده 50 سال قبل ست سال قبل اینجوری نمیتونستن با این مسئله دست سطح عام کار بکنن خب، و داره میریم به سن کوهنساله، کوهنسال، کوهنسال تکون نداره، حرکت نداره، ولی همون که نشسته، خب، مثل اینه که کوهنسال چونش خوب کار میکنه خب، چونش کار میکنه، حالا اگه کوهنسال کار آزموده باشه، فکرشو چونش، یعنی لازم نیست چیز کنه، و ما در آینده نزدیکی همینجوری که نشستیم با گوشه چشم خب تکون زیاد نمیخوریم با گوشه چشم میبندیم و باز میکنیم و چیکار میکنیم و میکنیم خب انسان اینه انسان داره میره به سمتی که کارهاشو خیلی هاشو تششؤاتی انجام بده این مقدمه یا نقطه به این ماجرا است و کار با شبکه مثبت و منفی رو علانان و تو این دوره کوهانسالیه که شبکه مثبت نماینده پیدا میکنه شبکه منفی هم نماینده پیدا میکنه نماینده شبکه منفی هم دجاله خب نماینده پیدا میکنه اونم نماینده پیدا میکنه و بعد جفت این شبکه ها این میخوا این میگه که من نجات میدم انسانو اون میگه من نجات میدم و به اصطلاح شبکه اونبر اون بعد با قدرت نمایی نظر ما رو جلب خواهد کرد خب یعنی یه اینجوری میکنه یه دفعه اینه که تو دست چهار تا سکه تلا میذاره کف دست شما ما چی, ما چی میشیم؟ با میریم خب میگیم این خودشه اونه که ما رو نجات میخواد بده همینه خب اونور میخواد به ما دانش کمال بده بگه از کجا آمدیم چرا آمدیم کجا میخوام بریم بعد میگه که من نگاه میکنم میرم که خب این که حسیزه این, که این مشخص میرم اون سم خب یعنی به زودی کار کارشناسی شبکه ها خیلی حساس میشه خیلی مشکل میشه اگر ما تمرین و عرفان کمال و عرفان قدرت و نشناسیم مثل آب خوردن گول میخوریم لذا مثلا در پیشگویی ها هست که خر درجال اینا رو شنیدین دیگه آه. پیشگوی اینه که ما هممون میفتیم میوفتیم دنبال درجال چجوری میوفتیم دنبال درجال برای اینکه برای اینکه انسان ممکنه داموقع به شناخت نرسه خب ممکنه به شناخت نرسه نتونه ارفان و کمال ارفان و قدرت اینا رو چیز کنه اون با قدرت نمایی نظر همه رو چیکار میکنه جلب میکنه همه را میوفتن دنبال قدرته درست یا نه؟ حالا بعضی ها فکر می که پرزن نماینده ها الان مشخص معین بعد نمیدونم سوار ورد مثلا عصبی سوار وردی میان اصلا ماجراهایی که به گناه های دیگری جاری خواهد بود و جاری خواهد شد خب شب را چگونه حدیث ما بود دراست و چند دقیقه بیشتر وقت نداریم بفرماید سوالتونو بفرمایید س... سدا رو ندارم. میکروفونو بدین بده چون... توی نموداره اولی که داشتی؟ بقید بقید. بین شبکه مثبت و منفی دو تا خط بود، اگر زهمت نیست. خواهیش میکنم. خواهش بالا بالا. میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم بله. ببینید، یه بخشی داریم که در اینجا تششوهات خاصی، مثل دعا، مثل نفری خب؟ اینها ها میشه. تششوهات منفی مثل ما زران فرس و میگیم چزده. خب؟ حالا اینا رو بعدا باش کار داریم و دور چهار و اینا راجبشون توضیحات بیشتری رو خواهیم داد. آره. خب همه رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار. خدا افرح. تا جلسه بعد اجازه بدیم. تا جلسه بعد دو هفته جلس چون هفته آینده تعطیله فرصت بسیار مناسبیه که دوستانی که فعالیتی نداشتن بتونن خودشون رو برسونن بقیه دوستان هم تجربه رو تکمیر کنن خواهش بیکنم دست خالی نداشته باشین خدا نگذار خدا حافظ.